داستان مادر بزرگ و دیوها این داستان نقلی است از بانو ژیلا رضایی از کرمانشاه یکی بود یکی نبود در دهکده‌ای دور پیرزنی بود که در کلبه کوچکی زندگی میکرد اون فرزندی نداشت و همسرش سال‌ها پیش از دنیا رفته بود اونقدر مهربون بود که همه بچه ها اونو مادر بزرگ صدا می زدن. تو اون دهکده هر کس مریض می‌شد، مادر بزرگ با گیاه های داروی درمونش می کرد. اگه پولی هم به دستش می اومد، به مردم فقیر دهکده کمک می کرد. یه صبح خوب تابستونی مادر بزرگ تصمیم گرفت به جنگل بره و گیاه دارویی رو که نیاز داره تهیه کنه. رفت و رفت و رفت تا به جنگل رسید. بعد مقداری از گل‌آر چید و یه دفعه پاش به یه نعل اسب خورد. نعل اسب رو که برداشت متوجه شد ای زیر اونه. کم کم حفره بزرگ و بزرگتر شد. مادر بزرگ ترسید و جیغ کشید. تو همون لحظه دو تا دیو بزرگ مادر بزرگ رو کشیدن داخل زمین مادر بزرگ از ترس بیهوش شده بود بعد از مدتی که بههوش اومد صدای دیوار شنید که با هم میگفتن ما هنوز هم بر سر عهد و پیمونمون هستیم تا آخرین لحظه زندگیمون دست از آزار از زیاد انسانا بر نمیداریم مادر بزرگ تازه فهمید چه بلایی سرش اومده دیوا مادر بزرگ رو چند روز توی سیاه جال زندونی کردن از غذا تو همسایگی خونه مادر بزرگ، مرد هیزم شکنی با همسر بد جنس و بداخلاقش زندگی می کرد. این زن اونقدر بد زبون و تند خوب بود که همه اهل ده از دست اون به ستوه اومده بودن زن هیزوم شکن با بدگویی بین همسایه ها بارها باعث اختلاف و دعوا شده بود. از طرفی هم خیلی به مادر بزرگ حسودی میکرد چون همه اونو دوست داشتن و به منزلش می رفتن و حال احوالشو میپرسیدن. زن هیزم شکن وقتی دید از مادر بزرگ چند روزی خبری نیست، شایعه کرد که مادر بزرگ به شهر رفته و به این زودی ها هم بر نمیگرده. اون به همه گفت: ما دررب داراش داده به من اگر مریض شدین بیاین پیش من. زن هیزم شکن معجون درست میکرد و به مریا میداد و حال همه اونا رو بدتر می کرد. حالا بشنویم از: مادر بزرگ اون فهمید بچه دیف. دوچار بیماری سختی شده بچه دیو مدام صرفه میکرد و هیچ غذایی نمیخورد. روز به روز حالش بدتر و بدتر میشد. مادر بزرگ که خیلی مهربون بود به دیو بزرگ گفت: خواهش میکنم اجازه بدید با این گلهای دارویی باد چتون خوبش کنم. زن دیو بزرگ با گریه وزاری از همسرش خواهش کرد. شاید راست بگو بچه‌مون از مرگ نجات بده خواهش میکنم بذار بچه درمون کنه دیو بزرگ اصرار همسرش رو قبول کرد مادر بزرگ شب تا صبح نمیخوابید بالای سر بچه دیو بیدار میموند و با مهربونی اونو مداوا میکرد بعد از چند روز حال بچه دیو خوب خوب شد دیوها که دیدن بچهشون خوب شده خوشحال شدن و جشن بزرگی گرفتن. زن دیو بزرگ از همسرش خواهش کرد که برای مداوای بچهشون مادر بزرگ رو آزاد کنه. دیو گفت گرچه ما دیوها با هم عهد و پیمون بستیم تا آخرین لحظه زندگیمون دست از آزار و اذیت از انسانا بر نداریم. اما برای نجات فرزندمون این آخرین باریه که به یه انسان کمک میکنیم سپس دستور داد و دو تا کیسه آوردن یک کیسه بزرگ و سنگین و دیگری کوچیک و سبک به مادر بزرگ نشون داد و گفت لطفا یکی از کیسه ها رو بردار به عنوان هدیه خداحافظی همونطور که میبینی یکی از اونا بزرگ و سنگینه اون یکی کوچیک و سبک هر کدومو که انتخاب کنی مال توه مادر بزرگ گفت من که تو این دنیا آرزوی مال و اموال ندارم دیگه پیر شدم احتیاجات من خیلی کمه پس این کیسه کوچیکو و برمیدارم مادر بزرگ از اونا خداحافظی کرد و دیوای خدمتکار تا بیرون حفره راهنماییش کردند. کردن مادر بزرگ توی یه چشم هم زدن به خونش رسید زن شکن که اونو دید از حسادت و عصبانیت گفت تا کجا بودی؟ چرا اومدی؟ تو این کیسه چی داری؟ مادر بزرگ گفت این یه است از طرف دیوای بزرگ جنگل. زن شکن گفت زود باش در کیسه رو باز کن بینم توش چیه؟ در کیسه رو که باز کردن هر دو مات و مبهوت به درون کیسه نگاه کردند. باورشون نمیشد کیسه پر از سکه های طلا بود. مادر بزرگ با صدای بلند گفت خدای شکرت پول دار شدیم. پول دار شدیم. پول دار. با اصرار زن هیزم شکن مادر بزرگ تمام حکایت رو براش تعریف کرد. زن هیزم شکن با خودش گفت عجب زن احمق و نادونیه. واسه چی کیسه کوچیکو و برداشتی؟ خودم میرم کیسه بزرگ رو میارم و حسابی پولدار میشم حتی پول دارتر از این پیرزن احمق و نادون اون معطل نکرد و با سرعت به جنگل رفت و وارد حفره شد دیوها با عصبانیت از اون پرسیدن اینجا چی کار داری جواب داد اومدم بچه دیو رو معالجه کنم دیوا با تعجب گفتن ما که اینجا مریضی نداریم اما زن هیزم شکن اصرار کرد که باید دیو بزرگ رو ببینم دیوا اونو به زیر زمین راهنمایی کردند در تمام این مدت زن هیزم شکن به اونا غر میزد و چپ چپ و با اکراه به اونا نگاه کرد بعد گستاخانه دست خودش رو رو کرد و به دیو بزرگ گفت من خیلی عجله دارم و میخوام هرچه زودتر برگردم یادگاری منو بدید که میخوام برم دیو وقتی حرفای اونو شنید فهمید برای چی اومده به دستور اون دو کیسه یکی بزرگ و سنگین و دیگری کوچیک و سبک آوردن و جلوش گذاشتن دیو بزرگ گفت یکی از کیسه ها رو واسه یادگاری از ما بپذیر زن شکن حتی منتظر نموند حرف دیو بزرگ تموم بشه. زود دست رو کیسه بزرگ و سنگین گذاشت. دیو با لحن تندی گفت برشدار، مال تو. زن شکن به سختی و با هر زحمتی بود کیسه رو برداشت و به خدمتکارا گفت مگه چشمتون نمیبینه که این سنگینه؟ چرا کمکم نمی کنید؟ دیوا زن رو با کیسه بزرگش به جنگل راهنمایی کردند. زن همین که مطمئن شد کسی اونو نمیبینه در کیسه رو باز کرد. دید: داخل کیسه اژدهاهای های قپی به اون زل زدند. وقتی چشمش به اجده ها و دیوا افتاد که از دهنشون آتیش در میاد و از گوششون بخار از ترس جیغ زد و پا به فرار گذاشت و اونو هم دنبالش کردند. اژدهاها ها میخندیدن و میقرریدن و هفت تا شاخ روی سرشون داشتن بعضی از اونا بازوهایی داشتن که پیچ و تابپ میخورد و به هم میپیچید زن هیزم شکن که از خستگی نای دویدن براش نمونده بود وحشت زده فرار میکرد تو همون موقع دستاشو به سوی آسمون برد و آجزانه از خدا کمک خواست که خدایا منو از دست اینو نجات بده ناگهان نوری از وسط درخت بیرون زد حیوله فریاد کشیدن و تو تاریکی محو شدن زنی هیزم شکن که از طرفی از نفس افتاده بود از طرفی می ترسید نکنه دوباره و برگردن به خاطر همین خسته و کوفته و گرسنه به سمت روستا رفت وقتی به روستا رسید همسایه ها و همسرش که وضع آشفته اونو دیدن دورش جمع شدن و ماجرا رو پرسیدند. مدتی طول کشید تا تونست حرف بزنه. همسرش گفت زودتر بگو ببینم چه اتفاقی افتاده. زن پس از شرح ماجرا گفت من تمام عمرم زن حریص و بد جنس و بد بودم بلایی که سرم اومده حقمه حالا فهمیدم باید از این به بد رفتارم رو درست کنم و سعی می کنم زن مهربون و آرومی برای تو و همسایه خوبی برای اهل ده باشم مردم روستا از شنیدن حرفای اون خیلی خوشحال شدن و کنار مادر بزرگ مهربون سالهای سال به خوبی و خوشی زندگی کردند دوستای خوبم این بود قصه امروز ما